بوسه زد دستمان ستیزه هور معشوق زن به اون زیبایی زنی که گفته که دست هر گونه آرزو از من دوره دیگه برای منصرف کردن دست من بوسی ستیزه هور یعنی کسی که ازش هور ازشکست بخواه به جنگ هور آمد از زیبایی گوب دستمان سه هور تازه گنجینه دست کردن دوست گفت بر گنج بسته دست میاز دست دیدن یعنی دست اراد کردن و بعد گنج اول بارد درش باز باشه تا بعد با بتونادن بده از گنج استراد این میگه این گنج درش پسته گف بر گنج بسته دست میاز که از غرض کوته است دست دراز دست دراز و دراز دستی تعبیر مجازیه به معنی تجاوز طلبی و حافظ بیگه صوفی پیاله خافظ حافظ پرداز ای كوتهاسینان تا کی دراز این این خشك ها و آسینشون کوتاه میکرد نخوری رو جای نجه نشه. آستین کوتاه و دست دراز خیلی در شعر حافظ اومده. دست دراز یعنی تجاوز. میگه دست به گنج وست دراز مکن برای اینکه دست دراز معمولا از غرض و مقصدش توقف بشه. باز کوتاه شدن دستا معنی معذور شدن. هیچ مسئله کوتاه شدن یا دراز شدن دست مطرح نیست در این طورت. گفت برگنج بسته دست میاس که از قرص اون هست دست دراز مهر برداشتن زکان نتوان معمول این بوده از شاید حالا همین هست که در معادن چیزای بسیار قیمتی مثل معدن الماس مثلا یا گوهرها فلا زمرد و این جور چیزا زیر نظر یه هیئت نظارتی باید این بهره برداری از این شروع بشه و با تشریفات خاصی بعد این در خان رو میبستن که کسی شبیه وقتی دستبرد نزنه یا مثل مقررات خیلی خیلی سخت شدید در افریقای جنوبی برای مدنه های وجود داشته با سگای درنده و با وسائل خیلی ایمنی خیلی مفصل فیکیدهی حفاظت میشده و موقع رفتن و برگشتن دقیقا همه جاشون جستجون شده و مراقبشون بودن برای اینکه خیلی فرق میکردون این است که کان که اینجا میگه مرادش هر نومعدنی معدن نمک مثلا نیست اونا رو توجه نشدن بهش ولی گنجینه های گرامبه ها همیشه در دوره های گذشتن در دوره صفحیه در دوره غاجار و همثال اینا کانهای گرامبه متعلق به دولت بوده مومیایی جزش بوده عرض که گوهرها بوده تلا و نقره بوده جواهرات بوده اینا متعلق به دولت بوده یا دولت مرحال در نظارت نزارت و محروموم شد محروموم میکردن صبح با نظارت اشخاص معین که مسئول این کار بودن بهشون شده بود میامدن و این در باز بوده این که به طور عادی نمیشده مورد یه جایی رو بکنن همشون که حالا هم مهرمون که می کنن مهرمون می که اولاهای میزنن، می زنن اینش دور ولی نمی کنن کارو برای این برای اینکه خلاف قانونه، این همین میگه. می مهر برداشتن زکان نتوان کان به مهر است چون توان نتوان مهدن رو مهر کردن همون کسی که مهر کرده باید بید این مهر رو هرکس که نمیتونه. خیلی بیت زیباست مهر برداشتن زکان کان نتوان کان به مهره چون توان نتوان سبر کن کان توست خورما بون تاب خور شتاب مخون باز میگه سبر کن آقا بون که منی معنی ریشه هست معمولا با هر چیز که میاد به معنی درخت اون چیزی گل بون به زیاد گل بون یعنی درخت بون خورما بان این یعنی درخت بود، میگه نخل، آن نخل هم بی خود من میگم، برای اینکه نخل اسم این نوع درخت هست. اسم درخت خورما نیست آنها، نخلی هم نیست که می‌بینی، بسیارشون زینتیه، نارگیل جز این درخت است که میگه قابل استفاده داره، خورما. جز این درخت است و درخت دیگری هم هست که روغن میده و همه اینا رو بهشون میگن نخل و درخت خورما رو بهش میگن نخل خورما صبر کن که توست خورما میگه درخت مال توه ولی درخت هر لحظه خورما نداره باید صبر کنی تا خورماش برسه و اون بری بچینیم بهرهبرداری برداری کنیم صبر کن کان آنو رو زمیر ملکی آن توست یعنی مال توست صبر کن کان توست خورما بون تا به خورما رسید شتاب میکن باده میخور که خود کباب رسد ماه میبین که آفتاب رسد این اشاره به یه است که مسئله معروفی الامور رو مرهونتون به اوقات ها هر کاری در گروه وقتشی وقتش باید برسه تا اون کار برسه این اون باده میخور که خود کباب رسد ماه میبین که آفتاب رسد رفتم ای آفتاب بلشن من چشمه نور و چشم رفشن من صبح رویت دمیده چون گل باق چون نمیرم برای چ چراغ چراغ رو صبح میکشن دیگه صبح چراغ رو یعنی خاموش میگه که صبح تو مثل گل باق دمیده وقتی صبح دمید دیگه چراغ روی محشوب رو تشبی کرده صبح میگه صبح رویت دمیده چون گل باق چون نمی... استفامید چجوری من نمیرم صبح رسیده باید چراغ چراف باید پشته بشه صبح رویت نمیده چون گل باغ چون نمیرم برابرش چراف علامت استفام میخواد پشته باشم مین به تشنه آب شکر آبش کرد یعنی دیگه مین به تشنه آب شکر گویان گه که لب دوز و مخه میدی تشنه هم هست باید نه نمیشه میکنه نمیشه چون در آمد رو حد به جلوگری عقل دیوانه شد شدید پری معتقد بودن که دیدن پری موجب شیدگی و دیوانگی میشه در اوستا و در دوران باستان پری جزء موجودات اهریمنی بود ولی بعدها در دوره اسلام پراموش میکن. حتی خود زردشتی البته در های عوام و این همین اسمشون زرزوشتی بود اصلا سفره برای دختر شاپریون می انداختن و ازش مراد می خواستن. و این رو مرحوم میزاخان کرمانی تو کتاب مکتوبش این تفصیل سفره شاپریون رو رو گفته و کرمان دوده میزاخان صد سال پیش دایج بود ولی در مدارک درست عوستایی پری مدود احریمنی و همیشه همراه دیف به عنوان موضوع اهریمنی آمده و چه, چه اهریمنی از اون بدتر که هر کسی او رو ببینه دیوانه بشه چون در آمد رو خط به جل گری عقل دیوانه شد چون دید پری در زم بگم که این رمالا و فالگیرا و افسونخونا و اینا یکی از اسماشون هم پریبند بوده پریبند مثل جنگی که میگن توی وی سرامین تختین گرگانی آمده که پریبندان و ذراغان نشد پریبند یعنی کسی که دا میده چون در آمد رو خط به جلوگری اغل دیوانه شد شدی دید پری نعلک گوش را چو کردی ساز نعل در آتش هم نهادی باز بعد نعلک گوش این گوشوره های هلالی ظاهرا بعد باشه که خیلی هم وقتی مورد بود بسیار زیبا بود یه حلوزه قشنگ بود نعل اصلا یعنی کفش در که ما در فارسی نعل و اون چیز آهنی در حقیقت اونم اسم کفش چارپایانه دیگه میکیم که از و یا رو نعل کردند یعنی کفش باش دیگه کفش بونه و به صورت تصنیهش که خیلی زیاد نعلیم نعلین که میگن اینجور که هاش و این در قرآن هم آمده میگه حضرت است که آمده کوه تور و خطاب رسید بهش گفت فخلا نعلیم این نکب الباد المقدس تبا تفشت در درار تو در حضور حضرت, حضرت حقی و ظاهراً در برابردان کفش هم این که از اشانه های احترام بوده برحال اصلا اصلاً یعنی کفشه حالی معمولاً استلاح شده است برای همون تلالونه آهنین که معمولاً به پای ستوران می برای اینکه اینا باید روی سنگ ها و روی جاهای ناهنوار حرکت بکنند و اون تیزی این سنگ هاینا گاهی سومین ها رو مجبوح کرده و اگر کامشون حال پشت اون عذ اصلا به درک نیازمیره ارزشش رو داشت با این نعل بعد خاصیت جادویی چون که اثر کردن داره این مثلا منحنی که به صورت گوشوارن بر گوش نکردن او رو هم بهش میگه نعلک گوش گوشا چون گردی ساز نعل در آتش هم फेकیدی با با شبی خون ماه چون گوشا به نظر من میاد که شبیه خون ما همون مسئله تاثیر ما خود در حالات مزاجی اشخاص که از گرده با شبیه خون ما چون کوشن یعنی چیزی؟ آفتابی به ذره چون کوشن میگه تو مثل آفتاب من طاقت من در هونکه ذره من نمیتونم که چیز کنم دست چون دارم من. دست داشتن یعنی دست برداشتن دست بدار از این کار یعنی بدش کنم دست چون دارمتم چجوری دست رو بردارن که در دستی تو در اختیار من من چجوری تو بکنم دست چون دارمتم که در دستی اندهی نیستم چو تو هستی اندهی نیستم یعنی اندهی نیست مرا این میمش زمیر مفغولی است از زمینی تو من هم از این زمین در زبون فهلاوی هست زمیک کاف دار آخرش کاف های که در فهلاوی موم به کافه کاف در فارسی میفته خانه زمیک میشه زمی. و زمیک زمی شد سخته شد اون زمین بنابراین زمی و زمین هر دو درست و نظامی به خصوص چون زبون هستیش هم پهلوی بوده زبون آزادی بوده در باید چون اونجا که شعبه زبون پهلویه خیلی این کلمه زمین رو به کار میبره زیاد یک هم اینجا ده. از زمینی تو من هم از زمیم یعنی هر دو زمینی هست گر تو هستی پری من آدمیم آدم میدونید اسم خاص ما الان در فارسی آدم رو عنی انسان به کار میبریم میگم کنون آدم شدی یا آدم یا آدم مثلا ولی آدم هنوز در زبانهای فرنگی آدم اسم خاص اسم شخص اسم عبول بشیره و در فارسی هم همین طور رو روی چند وقتی هیچ وقت تو سعبی و آفز اینا آدم عنی انسان به کار نمیره مطلقا برای انسان میگن آدمی با یای نسبت. یعنی کسی که منصوب به حضرت آدمی یا آدمی زاده برای اینکه ما، هم خودمون آدمی هستیم پدرمون هم آدمیه برای اینکه ما که بلاسوله که حضرت آدم، که نمیرسیم، که یعنی هم آدمی هستیم هم زاده آدمی هستیم برای اینکه پدر ما منصوب برای از آدمی نیست به آدم هر حال اینکه میگه که اگر تو هستی پری من آدمی آدمی صورت درست کلمه نیست یا آدم من درست نیست بایلا در پاکستان و اینجاها هیچ را آدم به جای انسان میگه یک آدمی یعنی این از زمینی تو من هم از زمینی گر تو هستی پری من آدمی هم لب بدندان گزیدنم تا چند باب دندان مزیدنم تا چند آب دندان خوردن و آب دندان چشیدن به عنی محروم بودن در خسرو شیرین اونجایی که وست میکنه شیرینو میگه پری پری بگذار ماهی به زیر مقنه صاحب کلاهی روزی چو محتاب جوانی سیه چشمی چو آب زندگانی چه و چه و چه مفصل بیتایه بعد توش میگه به مروارید به مروارید دندانهای چون نور صدف را آب دندان داده از دور یعنی صدف را اصلا محروم کرده و از بین برده و به مروارید دندانهای چون نور صدف را آب دندان داده از دور بنابراین آبدندان و آبدندان دادن و آبدندان خوردن به معنی محروم بوده یک کلمه دیگر هم داریم آبدندان نه آبدن. آبدندان منی معنی آدم ترسو و حریف آبدندان یعنی طرفی که قیلی به اعتنابش نمیشه یک فرهنگی در این زمینه بسیار فرهنگ با عرضه چیست راغو اسم برهان قاطع رو شنیدید؟ برهان قاطع معروفن فرهنگ فارسی انظر اسم. اما در حقیقت فرهنگ نیست. برهان قاطع خودش میگه که من مشکلات و نوادره لغات و ترکیبات فارسی رو جمع کردم. فناوری شما لغت می‌خونن تو برهان در نمیاد ولی آپدندون می‌خوان داره. نعلک گوشتو رو میخواهد داره آبدندان دادن و داره ترکیباتی که هست اینا یکی از بهترین منابعش همین برهان لب دادندان گزیدنم تا چند و آبدندان مزیدنم تا چند چاره ای کن که قمرسیده کسم تا یک امشب به کام دل برسن یه فکری کن من بام دیدم غم رسیدم به که من امشب به کام دل و کام دل رو بگیرم بس که جانم به لب رسید صدا کو گرم ده ماده دم سرد دم سرد دادن یعنی آیه یسع خوندم با حرف منفی زدم به خلاف دم گرم بختم از یاری تو کار کن یا یعنی تو محبتی بکنی من بختم یارش بختم از یاری تو کار کنند یاری بخت بخت یار کنند بخت آدم که بختش یاری کنی با اون انده مخور که یار تو هم بهش میگه ماون مال توست عجل نکن میرسی میگه چقدر آقا پتر من کدر وردی من که ای میگی که قصد نخوفت کنم من کار خود کن که من به کار تو هم. من هوا تو دارم کار از این سختر که بار افتاد بار خرق وقتی یک به خیلی تو میگه دوباره بار کردن نشان توی بالای مثلا زیر گل، زیر بارون و نینا خوار که بیافته یکی تار از این سبتر که بار افتاد باره همون، بار هم که کار افتاد کار افتادن یعنی در سطح یکی یکی هم کار افتاده یعنی کسی که مشکلی برش پیش آمده حافظ میگه عرضه کردن دو جهان بر دل کار افتاده بجز از عشق تو باقی همه فانی است یکی از شاه غزلای احفاجه است کار افتادن یعنی این مشکل پیش آمده کار از این صحبتر که بار افتاد بار افتاد بار رهن که کار افتاد در چه آهو سوری می ای دل تا به خرگوش دادن آهان سورین اما این حیونات شکارهای دشتین ها یک نسخال چربی بهتن شدید و میدونید که خراف شدن حیکر نتیجای زخیر شدن چربی این گوره خر رو اولا به قضی سرعت که اجام شما رد میشه اصلا بعد وقتی نگاه میکنم باستانید که بدن اینو با محقه تمام منحنی ها قشنگ که تمام شکاره این کن آهو هم هم میتوره آهو هم باید جیستخیز بکنه میپره شد ده متر هشت متر از بود در, در دست پلنگ. و در دراز مدت هیچ عیبونی به آهو نمیرسه فقط در خوته مدتی که پلنگو نمیتونن بگیره میشون یعنی اگه سه چار ثانیه اول گرفتش گرفت اگه نگرفت دیگه نمیتونی بگیره این باعث میشه که کاملا ورزه و زیبا آشان میشه سورین به معنی همون کفل رو و این رو با سرین اشتباه نکنید. سرین یعنی بخش سر ولی سورین یعنی کفل میگه گرچه آهو سرینی ای دلوان خواب خرگوش دادنم تا خواب خرگوش که خیلی خیلی شنیدید نمیدونم میدونید یا نفهم همه حیبان وقت میخوابن. چطور شده که خرگوش رو چهتیده هم با اینکه رویل کردن خرگوش وقتی میخوابه چشمای ظاهران بازی و یه ادهی از آدما هستن که وقتی میخوابن چشمای بازی از خواب هم نمی بینم ولی چشم باز خرگوش چشمش کاملا بازه وقت خواب هست خواب خرگوش که نایز قفلته اینه ماها و چون اون طرف به آهو آورده این طرف هم خرگوش ببرم که تناسوب به اید حفظ باشه دلت غشنگیش وجود این تناسوب هست زیبایی چیزی جد تناسوب نیست حالا ولکه نمی کنه. آهو خرگوش گفت گرگ و روباه ها این هم نموالش میاره جد چه آهو ای خواب خرگوش دادن تا چند ترسم این پیر گرگ روبه باز گرگ روباهی هی کند آه شنیدید که روبه هیوانی خیلی حیله گلی لونه ای که داره بیست سورا از این راستم از را این میره، از اون میره، راش میتونه میره این دلیل روباه بازی و نه و فقط ما گرد وقتی میاد که بیاد سراغ شما پخ میکنید تو دلش یا مثلا چراغ میزنید یا حمله میکنید میره. شما میگونید که راه چند تا بعد. اینقدر این کار میکنه ساعت ها تا به یه دفعه چیکارشو کنه و بره. شارک کردن بلد هم حد درست میزنه شارک این است که کارای آدم متقلب این ها گرگاشتی گرگاشتی کردن یعنی همین که ظاهران این رفت پسرش رفت برای رفتن شد بازی هم یعنی هیلگری و بازی میگه ترسم این پیر گرگ روبه باز یعنی چرخ گرگی و روبهی کند آقا شیرگیرانه سوی من تازد چون پلنگی به زیگر من تازد. ببینید آهو ترگوش و رو روباه شیر پلنگو در بیان مقاطبش خمهر آورد و مقصودش این است که میگه الان تو در اختیار منی باید هیا میگه من تاثیدی چه کاری دیگه از این بهتر که نمیشه و من میترسم میترسم این فرصت از دست بره و این فلک وی پیش بیاری که من بالاخره نشدی که نسبت باید این فرصت قنیمت بش آرزو هاست با توگه خیلی آرزوها دارم از تو با تو آرزو هاست با تو بگذارم یعنی بگذار مرا آرزوی خود از تو بردا. گرد در آرزوم دربندی باز در آرزوم یعنی اون باز هم زمین محبولی یعنی اگر مرا در آرزو یعنی در آرزو رو بر روی من ببندی گرد در آرزو دربندی میرم امشد در آرزوم من ناز میکش، کش میگه مهمان عزیزی دیگه این که هست, هست مهمان حقیق تدا مهمان عزیزی میگه ناز منو بکش برای اینکه پادشاهان و تاجداران ناز مهمان رو میکشن. ناز میکش که ناز مهمانان تاجداران کشن به سلطانان چون شکیبم نهاند دیگر بار گفت چونی میکنن تو دست بدار تو چشم میکنه ولی تو فعلا دست رو ناز تو گر به جان بود بکشم گر تو از حلوخی من از حبشم از اینو را مثل که قبلان عرض کردم. یه عدد شهرهایی بود که شما دارم شهرهای است که این را زمین ازش می میوردن کنیزکان گیرانبه ها علاوه که در اسلام بسیار وجود داشته که یه مردی کنیزی میخریده و چنان شیده این کنیز میشده بیشتر مربوط کله هم ها که زن بلد بوده کن رو اداره کنید که بجه شکلی بازیم مادر معمون خلیفه معروف عبوسی کنیز بود حالی که امین برادرش پسر زویده دکترمونی حاروم بوده ولی اون بچه بی جوهر بود بچه کودان بود و به اردنه معمون پیزی دلیلی که مادرش استوده شده این است که این کنیزی که می گاهی اتفاق بوده که همه اختیارات خاجه خودش رو در دست بگیره و در حقیقت خاجه بشه خلاه می و بسیار بوده است که این کنیزان پرزندانشون رو پادشای بسن. خیلی در تاری خیزان هست تا این است که وقتی میگه تو خلوخی هستی یعنی از بردگانی هستی که خیلی نازو تو برکشید و خیلی و اما هبشی هبشی سیاست که ارزان بها و بی ترین گلامترین سیاه بود. این نهایت فروتنی رو داره میکنه میگه ناز تو گر به جان بکشم گر تو از خلوخی من از هبشم تو اگه عزیزترین آدم هستی عزیزترین خانم هستی من تو از هبشم کچیکی میزون در براز گر تو از خلوخی من از هبشم چه محل پیشه چون تو مهمانی کیشکش کردن این چنین ها این سفره رو که تو میخوای چیزی نیست که برای مهمانی مثل تو محلی داشته باشه ارزشی داشته باشی یعنی میسر این کار اما لیکن این آرزو که میگویی دیر یا بی یوزوت میگویی بگه ولی این آرزو رو دیر بهش میشه رسید و تو خیلی عجله داری اشکال کار اگر برای بهشتی از خاری آید از چون منی چنین کار یا بشه بهشت از یه بوته خار بیدون از من هنگه هم همچه کاری میشه وگر از بید بوی اود آید از من این کار در وجود آید او مقصود اون چوبه بشه قصه تان هر چه از منت تامن جز یکی آرزی آن کام اون یکی رو سفر نظر کن باقی پر درسته رخ ترا لب ترا مزینه ترا جلد داری آن دگر خزینه ترا میگه به استثنان یک دونه مرواری باقی خزانه در اختیاری گر چنین کرده ای یعنی اگه این یه دونه کنار روش چنین گرده این شبتی کرد این چنین شب هزار در چون شد گرم دل زباده خام سابی بخشند تو ماه تمام تو از او کام خیش برداری دامن من زده از این بیت وقت در شاخشارای در از شاخشارای واقعا عدر این بازی میگه چون فری به زبان او دیدم گوش کردم ولی ایک نش میگه شنیدن قبول کرد